داستان دوم دکان بابام. اروپ بود، شب میشد. پول نقره ماه آرام از لبه کوه در قک سیاه شب میافتاد. چند گنجشک بازیگوش هنوز روی درخت انار وسط حیات بازی میکردند. از پنجره به حیات نگاه میکردم. خودنویسم جوهر پس میداد. با زحمت مشقهایم را نوشته بودم. انگشتانم جوهری بود. یک نیمه مداد جوهری از توی کوچه پیدا کرده بودم. مغزش را بیرون آوردم و ازش جوهر ساختم. اکبر گوشه قالیچه را کشید و جوهر روی قالیچه ریخت. ننه چندتا بامچه توی سر خودش زد. بس که انگشت های جوهریم را به پاشویه حوز مالیدم سرخ شد و درد گرفت از پنجره نور به بیرون می ترافید صرفه امو حسین زغال فروش که زمین گیر شده بود توی حیات می‌پیچید. حسین زمستان پیش از روی یخهای کوچه سرید و به زمین خورد و دیگر از رختخواب برنخواست زنش توتی خانم می‌رفت. و برای حاجی موسای بنکدار کشمش باک میکرد غروب برمیگشت با یک دانه نان سنگک تازه که زیر چادرش میگرفت هر وقت با ننه ام او را میدیدم نان را از زیر چادرش در می آورد و تعارف میکرد نه در سهر خانم نمک نمیشوی از این گوشی برشتش تکی برای پسرت بردار ننه در حالی که آب دهانش را گورت میداد میگفت نوش جان توتی خانم، به جان بچم همین الان نان خوردیم، خدا برکت بده نور هر پنجره به رنگی بود نور پنجره امو حسین و توتی خانم زرد کمرنگ بود نور اتاق امو علی بقال سفید بود چون چراغ زنبوری داشتند و خوب بود و همیشه بوی دلانگیز آبگوشت لیمو عمانی از اتاقشان در حیات پخش می شود. بهار بود و گربهی روی دیوار روبرون ناله می کرد. افق آبی می شد. آبی قلیز. توی آسمان در همان جا که دامن آسمان به لب دیوار دوخته شده بود رنگی ارغوانی با آبی تیره قاتی می شد. مثل انگشتان سرخ و دردناک من. ننه پریموس را تلمبه می زد. پریموس ناگهان گر می گرفت و دوباره آبی می شد. بوی پیازداغ و بوی دوده نفت با هم داخل شده بود. از افق آبی انگشتانم بوی اشک می آمد. جوهرم ریخته بود و جز گریه چارهی نداشتم. شب میشد. شب هنگام پر شدن اتاقها از سرفه و آه و غم بود. هنگام خیس شدن دفترهای مشق از اشک و هنگام جدایی از پرنده ها و همبازی ها. شب میشد و بابام با دستمالی پر از تروبچه‌های بهاره می‌آمد و گاه که کار و بارش خوب بود و دل و دماقی داشت یک دسته از قنچه های سراب برای ننه میآورد. شب بابام آمد با خودش گل نیاورد دستمالش پر نبود سه سلام تردیدآمیز و جوابی که در آن شرم ساری بود و مثل دستهای بابام خالی بود. خالی از چیزی که بیان شدنی نبود ننه هم سلام کرد و سلامش همان لحن قمالود روزهای بیکاری و ناشاد را داشت از یک پر تاووس کوچک را در اون کتابش جابجا میکرد و کمی نان با نمک به ته پر تاووس می که پر میان کتاب گرسنه نماند و بزرگ بشود اکبر که دفتر مشقش را گم کرده بود ترسان گوشه اتاق نشسته بود و روی یک برگ کاغذ مشق مینوشت. ننه سفره را پهن کرده بود. اشکنه را آورد و ترید کردیم. بابام همیشه ابتدا خوب ترید را با دست به هم می زد. درشت را با انگشت له می کرد و بعد ما با قاشق می خوردیم. ننه چغولی منو اکبر را کرد. وقتی گفت اکبر دفتر مشقش را گم کرده بابام لقمه در گلویش گیر کرد و دست اکبر توی تریت لرسید بابام آب خورد و اکبر نفس راحتی کشید ننه جوهر درست کردن من و لکه شدن قالیچه را هم به بابا گفت بابا از گوشه چشم قالیچه را نگاه کرد و گوشهایش قرمز شد نمیدانم چرا کتک ما نزد یا به قول خودش تا توپ نکرد توی خودش بود ننه در حالی که چند کنان میان آب زیادی اشک نمیانداخت رو کرد به بابام و گفت امروز چه کردی کاروباری گیرت آمد راستی دکانی که از میرزا میرزاغاسم میخواستی خریچه شد امروز رفتم پیش آقای اجاق که برایم در کتاب باز کند جریان را برایش گفتم کاغذی به من داد و گفت که امشب نوشته های کاغذ را قبل از خواب روی شکمم بنویسم و بخوابم. اگر کسی به آمد و گفت که دکان را بخرم، فردا آن را بخرم بعد رو کرد به ننه و گفت راستی کمی دیگر پول می اسباب باب ها را فردا بفروش و آن سینیهای ورشو و آن تونک های قلم دراش که یادگار مادر خدا بیا مرزمه همه را بفروش ننه ماتم زده به تاخچه نگاه کرد و گفت باشد، فردا میبرم سمساری؟ ولی تو را به خدا این دکان هم نشود مثل آن دستگاه جوشکاری که خریدی و دو سال گرسنگی کشیدی. بابام جواب نداد. وقتی که اشکنه تمام شد، بابا دستهایش را به ابرو مالید و دعا خواند. بابا میگفت چون ابروهای آدم سفره را میبیند باید به آنها هم مقداری غذا داد. چون در آن دنیا از ما بازخواست میکنند و به این خاطر ابروهایش را با دست چرب کرد. موقع خواب بابا کاغذی را از جیبش درآورد و توی رخت خواب دراز کشید و رو به من کرد و گفت پسر آینه ها را با قلم درشتی روی شکمم بنویس تا ببینم امشب چه خوابی میبینم کاغذ را گرفتم قلم درشتی را توی دوات زدم و با زحمت روی شکم پرموی بابام آن را رونویسی کردم نزدیک بود پایم به شیشه جوهر بخورد و تهماندهش هم بریزد ولی زود متوجه شدم ننه به شکم بابا نگاهی کرد و آهسته گفت تکلیف این بچه های لخت و پخت چه می شود خورخور بابا بلند شد ننه بیدار بود و آه می کشید. خوابم برد خواب دیدم بابا پشت یک دکان بقالی نشسته دکان پر از نور بود نوری مثل چراغ زم بوری بقال آهسته توی دکان سریدم بابا خندید و چندتا تا خورما به من داد چشمم به یک شیشه بزرگ سکنجبین افتاد بابا چرت میزد. شیشه را دو دستی بلند کردم خیلی سنگین بود سر شیشه را به دهان بردم ناگهان از دستم سرید و جیرینگ از خواب پریدم استکانی از دست ننه توی سینی چای افتاده بود ننه پای سماور نشسته بود سماور به قول ننه دو دستی توی سر خودش میزد و کسی نبود دستش را بگیرد بخار از دو سوی سماور به هوا میرفت بابا زودتر از همه بیدار شده بود و کتاب دعایش را میخواند کسی جرأت نکرد از او بپرسد چه خوابی دیده وقتی چایش را خورد ای کرد و بلند شد یک دکان بقالی با مقداری نخود و لوبیا و چیزهای دیگر در یک محله دور افتاده. بابام صبح تا غروب می پشت دکان و شب دست خالی به خانه می آمد. گاهی هم مقداری از اجناس دکان با خودش میآورد. آورد. ترشیده، خورمای کرمو، پیاز گندیده و هر که دیگر نمیشد شد نگه داشت. برای مدتی شکمی از ازادر می آوردیم. تابستان که مدرسه تعطیل شد من و اکبر رو از قرب دکان بابا رفتیم بابا خیار و خربزه و بار هم می آورد اصر که می مقداری از خیارها را توی طبقی می چید و روی سر من می که بروم و دوره بگردم و بفروشم اول خیلی خجالت می کشیدم طبق را جلو و می نشستم گوشه خیابان و با صدای لرزانی فریاد می زدم آی خیار قلمی سبز و نازو خیار خیار بستان پول حلال روز اول چیزی نفروختم و یک دست کتک خوردم بعد جاهای بهتری پیدا کردم و فروشم خوب شد بابا دوستی داشت که به او داشبباس میگفتیم داشبباس سیب و پیازش را آورد و ریخت توی دکان بابام و علاقش را هم فروخت و شریک بابام شد پدر بزرگم تا شنید بابام دکان باز کرده با عموهایم دعوا کرد و لنگان لنگان آمد و جلو پلاسش را کنار دکان پهن کرد پدر بزرگ یک خوشه انگور به دستش می‌گرفت و فریاد می‌زد: آی باغ تابا چه انگوری آی از دستم بگیریدش که خستم کرد دستم را انداخت آی مردم صاحبش فرشگست شده آی بابا خدا خانه خرابش کرد و انگورش را مفت میدهد آی دستم را انداخت مردم از آن به بعد اسم پدر بزرگ را دستم را انداخت گذاشتند. ظهر که میشد شد داشت عباس و پدر و بابان با ماسه نفر یک تغار ماسته ترشیده را جلو می کشیدیم. ده دوازده تا خیار پراسیده توی تغار خورد و بعد ترید می کردیم و میخوردیم. پدر بزرگ روی ماست های ماستهای تازه را میگرفت و روی زخم پا و ترک دستهایش هایش دا شب صدای خوبی داشت پس از نهار دمی آواز میخواند بابا میرفته دکان می و اکبر و ازخر روبروی دکان بازی می کردند و من اگر مشتری میآد راهش میانداختم. شبها خربزه گندیده خیارهای پلاسیده و تمات های کپک زده را به خانه میکشیدم. دکان از خانه خیلی دور بود و شب دیر وقت به خانه می رسیدیم سگها دورمان میکردند و با جنگ و گریز از دستشان فرار میکردیم و گاه هرچه در دست داشتیم از خربوزه و خیار و تماته به سویشان پرتاب میکردیم. ننه همکارش شروع شده بود. تماته ها را در اون دیگه بزرگی میریخت و رب درست میکرد. یک روز بار فروشی که بابام ازش میوه و تره بار میخرید برای گرفتن پولش به در دکان آمد. بارفروش مردی چاغ و سرخ و سفید بود بابا تا او را دید رنگش پرید مدتی با هم چانه زدند بابام پول نداشت و ناگهان از جا در رفت مشتی توی سر اسقر که نزدیکش بود کوبید و فریاد زد من بدبخت باید ششتا مثل اینها را نان بدهم حالا پول ندارم بابا ندارم آخرین چه خربوزه است برای من فرستاده یه مسلمان. هرچی گناه مال منه آن تماته هایت آن خیارت کدامش را بگویم با گفتن این حرف به طرف خربزه ها دوید و با یک حرکت خربازه ای را بالای سر برد و توی جوی خیابان کوبید یکی دیگر و یکی دیگر. مرتب فهوش می‌داد و تا ده دوازده تا خربزه را روی هم نکوبید آرام نشد. گداها و ولگردها جمع شده بودند و تند و تند خربازه های شکسته را می‌خوردند. بارفروش غیبش زد. پدر بزرگ مرتب رویه های ماست را روی زخم هایش میمالید و هیچکس نبود که خوشه های انگور را از دستش بگیرد دایم فریاد میزد آی مردم دستم را انداخت چه ای سلیغ دار پول حلال خدا به تو چشم داده که جنس خوب را ببینی آی دستم را انداخت صاحبش خانه خراب شده و ارزان فروشش می بیایید به تاراج ببرید بابام یک روز زنبیلی به من داد. نشانی یک بطری سازی را به من گفت که بروم و چند تایی بطری و شیشه بخرم. شیشه ها را بیمارانی که به شیر و خورشید می میخریدند. می خریدند، دو دواها را در آنها بریزند. رفتم به چهارراه آخرت، کاروانسرایی آنجا بود. داخل شدم. در میان گونی های پر از شیشه شکسته و بشکه‌های نفت سیاه، پیرمردی نشسته بود. موهای ژولیده و صورتی لاغر ای در وسط گرگر می کرد مرد میله آهنی درازی را از سوراخ گوره وارد کرد از آن سوراخ شیشه آب شده و سرخ را می دیدم. میله را چرخاند و بیرون آورد بر سر میله بندازه یک گرابی شیشه زوب شده چسبیده بود مرد با عجله میله را میچرخاند. سپس ته میله آهنی را به دهان گذاشت و گونه‌هایش را پر باد کرد. میله را چرخاند و باد در لوله دمید. گلابی بزرگ شد و باد کرد و به صورت یک گوی شیشه‌ای درآمد. بعد ته گوی را روی یک میله سیخ مانند که روی چوبی کوبیده بود زد و با یک قلممو ماده‌ای به دور میله در آنجا که به شیشه چسبیده بود مالید. صدای جز و جز به هوا رفت. و شیشه از میله جدا شد. با این کار چند تا بطری ساخت و بعد نشست کنار من. عرقش رو پاک کرد و گفت: دیگر این روزها کسی از من شیشه نمیخرد پسر جان. آنقدر شیشه و بطری خارجی در این میان ریخته که حساب ندارد. به زحمتش نمیارزد. پلاستیک هم که جای نوردان و غرابه را گرفته. میخواهم بروم تو کارخانه پلاستیک سازی کارگری بکنم. آری پسرم. میترسم قبولم نکنند. چون دیگر پیرم، عمرم را در پای این کوره به سرآوردم. پنجاه سال پای این کوره عرق ریختم، نفهمیدم چه کردم و چه خوردم از ده سالگی این کارم بود، آریجانم پولش را دادم و به راه افتادم هر شیشهی که میفروختم یک ریال سود می بردم. روزها زنبیل را از دکان بر می و میرفتم در شیر و خورشید و تا ظهر آنجا می نشستم. چند روز نگذشته بود که یک پسر دیگر همسن خودم با یک زنبیل شیشه خارجی آنجا آمد. او شیشه ها و بطری های کوچک و بزرگ را جمع می کرد و می شست و می آورد. دربان شیر و دختری داشت که هر روز از کنار ما می گذشت. یک روز آن پسر سر به سر دخترک گذاشت. دخترک خندید و فرار کرد. او شیشه بیشتری می فروخت و با دخترک هم لاس می زد. نتوانستم تحمل کنم. روز بعد دوباره این کار را کرد. پریدم و یقه پسر را گرفتم. دعوامان شد. با یک لگت زنبیل شیشههایم را توی خیابان پرت کرد. من هم شیشه او را شکستم. هر دو گریه کنان آنجا را ترک کردیم. کدک هم از بابام خوردم. دیگر شیشه فروشی را کنار گذاشتم. یک روز پیرزنی دستمالی به من داد و گفت: بچه جان این دستمال را جایی بگذار تا من برگردم و ببرم دستمال را گرفتم و روی سطلی که پر از کله غند بود گذاشتم بابام از بازار آمد یک مشتری قند خواست بابام مشتری را راه انداخت چند دقیقه بعد مشتری برگشت و غند را پس آورد و گفت بابا این غندت که خیز شده چرا جنس بد به مردم میفروشی بابا غند را نگاه کرد و به طرف سطل غند رفت دستمالی رو که من روی آن گذاشته بودم برداشت از تی دستمال آب می چکید به من گفت این دستمال مالکیه گفتم یک بیرزن به من داد که برایش نگه دارم دستمال رو باز کرد پر از تخم مرغ شکسته بود ناگهان چشمهای بابام سرخ شد، مرا روی سر بلند کرد و مثل خربوزه به زمین کوبید یک مشتری جلوی دکان بود، بابام یک پایش را روی شکم من گذاشته بود و به مشتری جنس میفروخت. من از آن زیر گریه و داد و فریاد می‌کردم. پدربزرگ پدر بزرگ از بیرون دکان داد میزد آی دستم را انداخت، این بچه ها باید یک کتگ ازابی بخورن، اینجور وایده ندارد، خیلی پر رو شدن آی صاحبش ورشکست شد بابام دستم را انداق چند گوری داشباس میانجی شد و گفت آخر میان دل بچه را باریدی مگر اینطور کتک میزنند. هر وقت میخوایی کتکشان بزنی به من بگو تا پایشان را بگیرم و تو با جارو یا با چوب به کف پایشان بزن مثل مدرسه ها اکبر و اسخر از, از بیرون دکان با وحشت مرا تماشا میکردند و میلرزیدند بابام که مشتری را راه انداخت پایش را از روی شکم من برداشت تمام استخانهایم درد میکرد بلند شدم و از دکان بیرون رفتم یک دکان بقالی بزرگ با همه جنس بالاتر از دکان بابا باز شد به قول بابا فاتحه ما خوانده شد پدر بزرگ هم واقعا دستش خسته شده بود و بی خودی فریاد میزد داشب باز سهمش را از بابا جدا کرد و رفت مستخدم مدرسه شد بابا دیگر جنس نمی آورد یک روز پدر بزرگ رویه ماست زیادی به دست و پایش مالید عصایش را برداشت رو کرد به بابا و گفت مرحمت زیاد پسرم هر وقت کاری با من داشتی خبرم کن ماست های امروزم دیگر ماست نیستن اصلا زخمایم توفیری نکرده و اصازنان دور شد بابام دکان را فروخت و کلی ضرر کرد دوباره بیکاری شروع شد و آوازهای پرسوز ننه خانه را پر کرد بابام دیگر سراغ سید اجاق نرد